باغ سیب این داستان زیبا رو بانو فرهناز سمدایی از گرگان نقل کردن روزی بود روزگاری بود پادشاهی بود که سه تا پسر داشت به نامهای ملک محمد، ملک ابراهیم و ملک بهمن درخت سیبی تو قصر پادشاه بود که سه تا سیب داشت پادشاه میخواست اون سیبا رو برای پسراش عقد کنه چون وقتی می رسیدن به سه تا دختر زیبا تبدیل می شدن وقت رسیدن سیبا شده بود پادشاه دستور داد که هر شب یکی از پسرا بره پای درخت سیب بشینه و کشیک بده تا کسی سیبا رو نچینه ببره شبی که نوبت ملک ابراهیم پسر بزرگتر بود اون خوابش برد. صبح که بیدار شد یکی از سیبا نبود شب دوم نوبت ملک بهمن پسر میانی بود. اونم خوابش برد. صبح که بیدار شد سیب دوم هم نبود. شب بعد نوبت ملک محمد پسر کوچیک بود. ملک محمد واسه اینکه خوابش نبره، انگشتش رو برید و نمک زد. نزدیکیای صبح دید دستی توی هوا پیدا شد. تا خواست سیب رو بچینه ملک محمد شمشیرش رو کشید و زد به مچ دست دوست و اون رو زخمی کرد ولی اون دست نامرئی سیب رو چید و غیب شد. ملک محمد رد خونی رو که از دست ریخته بود گرفت و رفت تا رسید سر یه چاهی ولی دید کسی کنار چاه نیست اون همونجا نشست و منتظر دزد باغ سیب شد. صبح که شد پادشاه خبردار شد که ملک محمد برای پیدا کردن دزد سیب از قصر بیرون رفته. رو به پسراش کرد و گفت چرا نشستید؟ مردم یه دونه گم کنن از هفت تا خونه سراغش رو میگیرن. شما برادرتون گم شده اصلا انگار نه انگار. هیچ سراغش نمیرید. برادرا که اینو شنیدن بلند شدن و رفتن دنبال برادرشون. ملک محمد لب چاهی نشسته بود. قرار گذاشتن پسر بزرگ وارد چاه بشه و ببینه اونجا چه خبره. ملک ابراهیم رو به تنابی بستن و توی چاه فرستادند. چند متری که پایین رفت گفت سوختم، پختم، بکشیدم بالا. کشیدنش بالا. بعد ملک بهمن به کمرش تناب رو بست و وارد چاه شد. کمی که رفت داد زد سوختم پختم بکشیدم بالا اونو هم کشیدن بالا ملک محمد گفت من میرم اما اگه هر چقدر بهتون گفتم سوختم منو نکشید بالا به حرفم گوش ندید تناب رو به کمرش بست و داخل چاه شد و پایین رفت هر چقدر گفت سوختم پختم برادراش گوش ندادن و اون رو به ته چاه فرستادن ملک محمد وقتی تای چاه رسید دید کف چاه خون ریخته رد خون رو گرفت و رفت و رفت تا اینکه دید یه دختر زیبا نشسته که به ماه میگه تو در نیا من درمدم. سر یه قول بزرگیم روی زانوشه و قول به خواب رفته به دختر گفت تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دختر گفت من همون سیبم این دیوا سه تا برادر که دوتاشونم تو اون دوتا اتاقا هستم خواهرای منم پیش اوناست اما تو چرا اینجا اومدی؟ تا این دیو تو رو نکشته زود برو که تیکه بزرگت گوشته ملک محمد گفت من با نامردی کسی رو نمیکشم. بعد بعد نوک شمشیرش رو به کف پای دیو زد دیو تکونی خورد و گفت آی گیس باریده پشه رو کیش کن ملک محمد گفت پشه نیست عجلت رسیده دیو بلند شد سنگ آسیا رو روی سرش گرفت و به طرف ملک محمد پرتاب کرد ملک محمد جا خالی داد سنگ آسیا مثل یک کوه به زمین خورد بعد ملک محمد مثل برق شمشیرش رو در آورد و زد تو سر دیو و اونو مثل خیال دوتا نصفش کرد. بعد به اتاق دیگه رفت و دو تا دیو دیگر رو هم کشت. هر سه تا دختر رو کنار دهانه چاه آورد و اولی و دومی دو رو با تناب به بیرون فرستاد. دختر سومی که کچیک تر بود گفت: اول تو برو بعد من. ملک محمد گفت: چرا؟ دختر گفت: اگه اول من برم برادر تو رو بالا نمیکشن که ملک محمد قبول نکرد و گفت اول تو برو بعد من دختر گفت پس خوب گوش کن اگه تو رو بالا نکشیدن و مجبور شدی ته چاه بمونی بدون که این سرزمین دیو هاست و تو این سرزمین جواهرای زیادی هست یه دستاس طلا هست که اگه به چپ بچرخونی ازش مروارید بیرون میریزه و اگه براست به چرخونی یا قود یه صندوقچه طلا هم هست که درش را اگه باز کنی خروس بیرون میاد وقتی بگه قوقولی گوگول زمورد از نوکش بیرون میریزه اگه خواستن منو عروس کنن من ایراد میگیرم که هر وقت دستاس و صندوقچه آوردید عروسی میکنم کسی هم که نمیتونه اونو بسازه اگه دستاس و صندوقچه رو کردند، کردن معلوم میشه تو رو از چاه بیرون آوردن حالا اگه برادرات تو رو از چاه بیرون کشیدن که هیچ اما اگه از وسط چاه دوباره پایینت انداختن هفت طبقه میری زیر زمین اونجا دو تا گاو میبینی یکی سفید، یکی سیا اون دو تا گاو دارن با هم جنگ میکنن اگه بپری روی پشت گاو سفید میای روی زمین اما اگه به پری رو پشت گاوه سیاه، باز هفت طبقه میری پایین. ملک محمد دختر کوچیک رو بالا فرستاد. وقتی خودش تناب رو به کمرش بست، برادرش اون رو تا وسط چاه بالا کشیدن. بعد با هم مشورت کردند که اگه ملک محمد به پدرمون بگه که ما ترسیدیم و توی چاه نرفتیم، برای ما سرشکستگی داره. پس تناب رو رها کردن و ملک محمد هفت طبقه افتاد پایین، و رفت زیر زمین و بیهوش شد. وقتی به هوش اومد، فکرش رو جمع کرد و حرفای دختر رو به یادش آورد و منتظر روی زمین نشست تا گاوا بیان. از اون طرف برادرای ملک محمد دخترا رو برداشتن و رفتن و به پدرشون گفتن ما ملک محمد رو ندیدیم، دیوار رو کشتیم و این دخترا رو نجات دادیم. چند روز گذشت. ملک محمد تشنه و گرسنه منتظر بود تا عاقبت گاوا بیان همونطور که دختر گفته بود یکی از گاوا سفید و دیگری سیاه بود گاوا با هم مشغول جنگ شدند. ملک محمد خدا رو یاد کرد و گاو سفید رو نشون کرد و روی اون پرید تو همین موقع گاوا سیاه چرخید و ملک محمد اشتباهی پرید رو پشت گاو سیاه و هفت طبقه دیگه رفت زیر زمین و باز بیهوش شد. وقتی بهوش اومد دید توی بیابونه. بلند شد و راه افتاد. تو راه چشمش به گافچرونی افتاد که با دو تا گاف مشغول شخم زدن بود. پیش اون رفت و از اون چیزی برای خوردن خواست. گاوچرون گفت بیا با این گاو شخ بزن تا من برم برات نون بیارم. ولی صدات رو بلند نکنی که به صدای تو دوتا شیر میان و هم گاو میخورن و هم خودت رو. گاف چرون رفت. قدری که دور شد ملک محمد با صدای بلند گاوها رو روند. شیرها صدای اون رو شنیدن و پیداشون شد. ملک محمد گاوها ها رو رها کرد شیرها رو گرفت و به خیش بر. مرد گافچرون که برگشت این منظره رو دید جرأت نکرد نزدیک بشه. ملک محمد سر شیرا رو گرفت و به هم کوبید. صدا زد. نه ترس بیا. گافچرون چند تا قرص نون آورده بود. ملک محمد نونا رو خورد آب خواست. گافچرون گفت آب نیست. ملک محمد گفت چرا؟ گافچرون گفت اینجا چشمه آبی هست که یک اجده بزرگ جلوی اون خوابیده و نمیذاره آب به مردم برسه. روزای شنبه برای خوراک دیو یه دختر و مقداری خوراکی میبرن کنار چشمه. اجده که برای بلعیدن اون تکون میخوره قطری آب میاد که مردم بردارن. امروز هم که جمعه است و آخر هفته آبم تموم شده. فردا نوبت دختر پادشاهه که خوراک اجدها بشه ملک محمد گفت اگه من اژدها رو بکشم به من چی میدن مرد گاوچرون گفت مگه از جونت سیر شدی ملک محمد گفت من رو ببر پیش پادشاه مرد قبول کرد وقتی ملک محمد به دربار رسید چون شاهزاده بود رسوم دربار رو خوب بهجا آورد پادشاه خیلی خوشش اومد و گفت جوان چی میخوای؟ ملک محمد گفت: من حاضرم اجدها رو بکشم. پادشاه گفت: حیف جوانیت نیست. ملک محمد اونقدر اصرار کرد تا پادشاه قبول کرد. ملک محمد فردای اون روز همراه دختر پادشاه و یک سینی غذا رفتن تا رسیدن نزدیک چشمه. ملک محمد دختر را عقب زد و مشغول خوردن غذا شد. اژدها هر چقد دید از قضا خبری نیست حرکتی به خودش داد و اومد سمتشون تا اونا رو ببلعه ملک محمدم امانش نداد شمشی رو کشید و خدا رو یاد کرد و چنان زد به کمر اژدها که دو نیم شد اون وقت خودش از هوش رفت دختر پادشاه دون دون به شهر رفت و ماجرا رو برای پدرش گفت پادشاه چند نفر را فرستاد تا ملک محمد رو بیارند وقتی ملک محمد به هوش اومد پادشاه گفت ای جوان در عوض این خدمتی که به ما کردی چی میخوای؟ ملک محمد سرگذشت خودش رو گفت و از اون خواست کمکش کنه تا برگرده روی زمین پادشاه گفت ای جوان کاری از من ساخته نیست اما اینجا سیمرغی هست که روی فلان درخت بچه داره اگه بتونی جوجه های اون رو نجات بدی شاید بتونه کاری برات انجام بده ملک محمد جای سیمرغ رو پرسید و به طرف لونه اون رفت از تصادف روزگار موقعی به پای درخت رسید که مار بزرگی برای خوردن جوجه سیمرغ ها از درخت داشت میرفت بالا و بچههای سیمرغ از ترس جیک جیک میکردند ملک محمد شمشیر کشید و خدا رو یاد کرد و محکم زد به کمر مار. مار دو نصف شد. نصفش رو انداخت پیش بچه‌های سیمرغ، نصف دیگشم هم گذاشت زیر سرش و خوابید. خواب بود که سیمرغ بالبال زنون اومد و چشمش به ملک محمد افتاد. گفت: "پس همینه که هر سال جوجه های من رو میخوره. سنگ بزرگی برداشت و تا اومد اون رو به طرف ملک محمد بندازه جوجه هاش بنای جیک جیک رو گذاشتند. سیمر پرسید چه خبره؟ چرا جیک جیک میکنید؟ جوجه ها این مار بود که میخواست ما بخوره این آدمیزات ما رو نجات داد. سیمر سنگ رو انداخت و صبر کرد تا ملک محمد بیدار بشه. وقتی ملک محمد بیدار شد، سیمور حال و حکایتش رو پرسید. ملک محمد ماجراش رو برای اون تعریف کرد. سیمور گفت، برو هفت تا گاو رو پوست بکن، پوست اونا رو پر از آب کن و گوشتاشون لاشه لاشه کن و بران بیار تا تو رو برگردانم روی زمین. ملک محمد رفت و از گاو هفت تا گاو گرفت پوستشون رو کند و داخل اونا رو پر از آب کرد. گوشتهارم لاشه لاشه کرد و پیش سیمرغ برگشت. سیمرغ گوشتا رو روی بال و پوستای پر از آب رو روی بال دیگش گذاشت. ملک محمد رو پشت خودش سوار کرد و گفت: هر وقت گفتم تشنمه یه لاشه گوشت گاو بنداز تو دهنم. هر وقتم گفتم گرسنمه یه مشک آب خالی کن تو دهنم. رفتند و رفتند تا اینکه تنها یک مشک آب باقی موند که سیمرغ به جای اینکه بگه تشنمه گفت گرسنمه دیگه گوشتی نمونده بود ملک محمد ناچار شد تیکه ای از گوشت رونش رو بکنه و بندازه دهن سیمرغ سیمرغ که دید گوشت شیرینه فهمید گوشت آدمی زاده گوشت رو زیر زبونش نگه داشت تا رسید به روی زمین سیمرغ ملک محمد رو روی زمین گذاشت و گفت برو ملک محمد که پاش درد میکرد و نمیخواست سیمرغ بفهمه گفت تو برو من بد میرم سیمرغ گفت اول تو باید بری تا منم برم ملک محمد خواست بره ولی نتونست راه بره سیمرغ گوش رو از زیر زبونش بیرون آورد و چسبوند به رون ملک محمد پای اونم فوری خوب شد سیمور چند تا از پرای خودش رو کند و داد به ملک محمد و گفت هر وقت کارم داشتی یکی از اینا رو که آتیش بزنی سری من حاضر میشم. و از اونجا دور شد. ملک محمد راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به شهر خودش. شنید که عروسی برادراش نزدیک شده و چون ملک محمد پیدا نشده قرار دختر کچیکتر به عقد خود پادشاه در بیاد. ملک محمد رفت پیش یه شاگرد زرگر. روزا پیش اون کار میکرد و شبها توی دکان زرگر میخوابید. تا روزی که قلامای شاه اومدن و به زرگر گفتند یه صندوقچه میخوایم که وقتی درش رو باز کنی یه خروس طلا بیاد بیرون و هر وقت ققلی ققل کنه جواهر از نوکش بریزه. زرگر گفت این کار کار من نیست. ملک محمد حرفای اونا رو شنید و گفت اوسا من اینو میسازم زرگر گفت پسر زرگرای بزرگ نتونستن بسازن تو چطوری میخوای بسازی؟ ملک محمد گفت تو وقت قبول کن بقیهش با من زرگر قبول کرد از خزانه پادشاه طلاق و جواهرات زیادی برای ساختن صندوقچه آوردن و به زرگر دادن ملک محمد به زرگر گفت اوستا این جواهرات همه مال تو. من بدون این طلا و جواهرات خروص طلایی رو میسازم. شب که شد ملک محمد رفت بیرون شهر. یه پر از پرهای سیمرغ را آتش زد. طولی نکشید که آسمون سیاه شد و سیمرغ به زمین نشست و گفت ملک محمد چه کار داری؟ ملک محمد گفت بر از اون زیر زمین دستاس و صندوقچه رو بیار سیمور پرواز کرد و رفت و خیلی زود با دستاس و صندوقچه برگشت اونا رو جلوی ملک محمد گذاشت ملک محمد دستاس رو پنهون کرد و صندوقچه رو برداشت و اومد توی دکان و خوابید صبح زود زرگر که شب از ترس خوابش نبرده بود اومد ملک محمد صندوقچه رو به اون نشون داد جواهراتی را که از اونو که ریخته بود داد و گفت بیا اینم دستاس هنوز آفتاب بالا نیومده بود که غلامای شاه برای بردن صندوقچه اومدن زرگر صندوقچه رو برداشت و با قلاما رفت به دربار و اونو تحویل داد دختر تا صندوقچه رو دید فهمید که ملک محمد برگشته کنیزش رو فرستاد دکان زرگر قصه رو از اول تا آخر به ملک محمد خبر داد که برادراش چه به پدرشون گفتن. ملک محمد به کنیز گفت بگو موقعی که از همون بیرون میان من با لباس سیاه و سوار بر اسب سیاه میام و اون رو میقاپم و با خودم میبرم. وقتی دوباره از دختر خواستند اجازه عروسی بده گفت هر وقت دستازی آوردید که اگه به چپ به چرخونیش موروارید ازش بریزه و اگه به راست به چرخونیش یا قط ازش بریزه اون وقت عروسی می باز به همون زرگر مراجعه کردند. ملک محمد شبونه دستاز رو از جایی که مخفی کرده بود بیرون آورد و به زرگر داد. صبح زود زرگر دستاز رو برد و تحویل قصر پادشاه داد. دختر دیگه بحونهی نداشت و حاضر و عروسی شد. ملک محمد به زرگر گفت در عوض این همه جواهراتی که به تو دادم یه خواهش دارم. زرگر پرسید چه خواهشی؟ ملک محمد گفت یه اسب سیاه و یه دستم لباس سیاه بران بیار. زرگر که خیلی ملک محمد رو دوست داشت فوری اسب سیاه و یه دست لباس سیاه برای اون تهیه کرد. موقعی که عروس از همون بیرون اومد ملک محمد سوار بر اسب سیا جمعیت را شکافت به دختر نزدیک شد و اون رو قاپید و ترک اسبش نشوند و مثل برق و باد از اونجا دور شد رفت و رفت وقتی کاملا از شهر دور شد یکی دیگه از پرهای سیمرغ را رو آتیش زد سیمرغ توی چشم به هم زدن جلوی ملک محمد حاضر شد ملک محمد دستور داد تا سراپرده و قشونی براش فراهم کنه. سیمور پرکشید و رفت و خیلی زود با یه سراپرده و یه قشون پیش ملک محمد برگشت. ملک محمد به پدرش پیغام فرستاد که آماده جنگ بشه یا که کشورش رو بده به اون. پادشا آماده جنگ شد. جنگ شروع شد، ملک محمد سوار بر اسب سیاه و لباس سیاه به همه طرف حمله می کرد ولی به کسی آسیب نمی تا رسید به برادراش هر دوتاشونو اسیر کرد شب که دست از جنگ کشیدن، پادشاه دید پسراش اسیر شدن و نمی تونه با ملک محمد به جنگه پادشاه که دید نمی تونه ملک محمد رو شکست بده، پیغام صلح داد ملک محمد هم با فتح و پیروزی به قصر پدرش برگشت مقابل پدرش که رسید نقابو از چهرش برداشت پادشاه پسر کوچیکش را شناخت از خوشحالی اونو بغل کرد و نوازش کرد و از سرگذشتش پرسید ملک محمدم سرگذشت خودش را تعریف کرد وقتی پادشاه حرفای اون رو شنید گفت چرا از اول پیش من نیومدی و جنگ را پذیرفتی ملک محمد گفت اگه این کارا رو نمی کردم برادرام می دروغ میگه و تو حرفام رو باور نمی کردی. ولی حالا که اونا اسیر من هستن و نمی تونن دروغ سرهم هم کنن منم میتونم حرفم رو بزنم. پادشاه هم از پادشاهی دست کشید و ملک محمد رو به جای خودش به تخت پادشاهی نشوند. هفت شبان روز شهر رو... آزیم بستن و هفت شبانه روز به جشن و پایکوبی پرداختند دوهول پادشاهی زدند ملک محمد و دختر با هم عروسی کردن و سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند